اما زمانی که میخواین نسبت به ممدود النصب الى الممدود از اسم ممدودی اسم منسوب درست کنیم حمراء حمراوان حمراوی حوراء حراوان حراوی صحرا صحراوان صحراوی ابتدا ابتداءان ابتدایی انشاء انشاءان انشائی وضع وضعان وضا وضا وضائی کسا، کساؤن یا کساوان تصنیهش کسائی یا کسائی کساوی هم اسم منسوبش هست. شفا تصنیهش میشه شفاان یا شفاوان اسم منصوبش میشه شفائی یا شفاوی بنا بناان یا بناوان اسم منصوبش میشه بنایی و بناوی در این درس قبل از این که اسم منسوب بیاره تصنیه رو هم آورده به خاطر این که ما برای این که اسم منصوب درست کنیم از ممجود حمزه اش رو نگاه می کنیم و این هم برای ما مهم هست که این حمزه اصلی هست یا نه برای این که بدونیم حمزه اصلی هست یا نه قبلا ها گفته بودیم که به تصمیه می بریم به خاطر این در این بحث تصمیه اسمهای ممدود رو هم ذکر کرده بود بیاییم روی قاعده قاعده دویست و کتاب عند النصب الى الممدود ينظر الى همزته هنگامی که می خوایم نسبت بدیم به ممدودی کلمه‌ی ممدود همزش نگاه کرده میشه و ان کانت للتانیث قلبت واضحا اگر همزه همزه تانیث بود در اسم منصوب تبدیل به واب میشه مانند حمراء حمراوی ببینید حمزه در تصنیه و در اسم منصوب تبدیل به واو میشه اگر حمزه علامت تانیث باشه مانند حمراء و حوراء و صحرا که علامت تانیث هر سجا لذا در تصنیه و در اسم منصوب تبدیل به واو میشه حمراء تصنیهش میشه حمراوان اسم منصوبش میشه حمراوی حوراء حوروان حوراوی صحرا صحراوان صحراوی و امکانت اصلیتاً بقیت علا حالها اگر همزه اصلی باشه سر جاش باقی میمونه مانند ابتداء انشاء وضع ابتداء از فعلش معلوم میشه که این همزه اصلیه انشاء وضوع سبست درش پس از اینجا ما میگنیم که این همزه اصلیه در مسننا و در اسم منصوب سر جاش باقی میمونه ابتداء اسم تثنیش میشه ابتداءان اسم منصوبش میشه ابتدایی، انشاء انشاءان انشائی وضع وضعان وضعی پس اگر همزه اصلی بود در اسم منصوب سر جای خودش باقی میمونه سر حال خودش و اینکانت منقلبتاً ان اصل اگر منقلبه از اصلی بوده باشد حرف اصلی کلمه ای تبدیل به همزه باشه جاز ابقاؤها و قلبها وابن. این دو حالت جایزه در و در اسم منسوبش. جایزه که همزه رو سر جاش باقی بگذاریم و جایزه که تبدیل به واو بشونیم. جاز ابقاؤها، جایزه که همزه رو سر جاش باقی بگذاریم و قلبها وابن و جایزه که همزه رو تبدیل به واب کنیم. چه در مصنّات چه در اسم منسوب. مانند كساء. ما می‌دونیم که این در اصل بود که بوده، در شفا هم یا بو... بوده، شفیته، در بنا هم یا بوده، بنیته لذا پس این حمزه از اصلی تبدیل به حمزه شده در کسا و شفا و بنا اینجا در تصمیه یا در اسم منصوب همزورو رو میتونیم سر جلق باقی بذاریم و میتونیم تبدیل به واوش کنیم. در تصمیه کسا میگیم کساان و کساوان در اسم منصوبش میگیم کساعی همزور سر جلق باقی میگذاریم یا کساوی شفاعه شفاعان و شفاوان اسم تصمیهش هر دوتا حالا جایزه. در اسم منصوبش میگیم شفاعی و شفاوی همزار رو سرجه باقی رو داریم میتونیم تبدیل بوابش کنیم بنا در اسم تصمیهش میگیم در تصمیه تصمیهش میگیم بناان بناوان و در منصوبش هم میگیم بنائی و بناوی تصمیه بود درست کردن منصوب از ممدود اما ان نصب و الامافی یا اون مشدده نسبت دادن به کلمه که در اون یای مشدد باشه خودش یای مشدد داشته باشه میخوام اسم منشو درست کنیم چی پیش میاد حی حیوی طی تووی غی غووی نبی نبوی قسی قسوی علی علوی مقدی مقدی مرمی مرمی, مرمی بوستوری بحتری در امثله گروه سوم هیچ فرقی بینشون نمیومد چارون یای تجدید دار رو حذف کردین به جای یای تجدید داره منصوب آوردیم مقضوی یای تجدید دار خودشو حذف می‌کنین یای تجدید داره منصوب میاریم مقضوی اسم منصوب شمیشه میشه مرمی اسم منصوبش هم میشه مرمی مختری اسم منصوبش شمیشه میشه اما در گروه چارون یای تجدید دار حرف آخر نیست و حرف وسط هست مانند طیب طيب لين ليني کو سائر کو خب قاعده اسم المختوم بياء مشدده اند النسب اليه احكام ثلاثه اسمی که با ياء مشدد مختوم میشه هنگامی که چیزی رو به نسبت بدیم سه تا حکم داره در موقعی که میخوایم از اون اسم منسوب درست کنیم چند تا حکم داره؟ سهتا قبلن قبلا هم توضیح دادیم جناب شیخ. 1 فاین كانت الیاء المشدده بعد حرف اگر یا مشدد بعد از چند حرف بود؟ بعد از یک حرف. مانند حی که یا مشدد بعد از ح اومده یک حرف. ردت الیاء الاولى الى اصلها یا, اصل، یا اولی به اصلش برمیگرده. یای حی اولین حرفش به چه برمیگرده؟ به اصلش برمیگرده در حی خب اصل خود یا بوده و قلبت ثانیه تو واوان و حرف دوم تبدیل به چی میشه؟ یا دوم تبدیل به چی میشه؟ به واو میشه پس اینا دوتا یا هستن تجیدار اولی سرجهاش باقی میمونه دومی تبدیل به چی میشه؟ به واو میشه حیوی در تای اصلش واو بوده یا نطوه سماه از فعلش تشخیص میدیم که در تایی، یای یا چی بوده و... وابد بوده، پس به اصلش برمیگرده. و دومی رو ما تبدیل به بله میکنیم. پس میشه تواوی. غی هم که اصلش وابد بوده یا اولی اصلش وابد بوده، غوا یا روی. ها به اصلش برمیگردیم یا اولو و یا دومو ما تبدیل به میکنیم. میشه غواوی. پس زمانی که یا تجیدار بعد از حرف اول بود یای اول رو به اصلش برمیگردونیم و یا دوم رو تبدیل به چی میکنیم؟, واو میکنیم. به واغ میکنیم و امکانت بعد حرف این اگر یا تجیدار بعد از چه اومده بود؟ بعد از دو حرف اومده بود مانند نبی که حرف اولش نون هست و حرف دومش دو با اینجا چیکار کارو میکنی؟ اینجا خودش میگه فه امکانت لیاق المشددتو؟ بعد حرفين ردت الياء الأولى إلى أصلها وقلبت الثانية واوان وفتح ما قبلها إن قا... أولي بود وإن كانت بعد حرفيني أما إذا كانت تجديد بعد الزو حرفين خذت الياء الأولى يا أولي حاسف ميش كلان وقلبت الثانية واوان ودوغي تبديل بواف ميش وفتح ما قبلها وما قبلش فتح هذا ميش ما نند النبي ميش ناباوي يكي ياروحاس كاريم يفير تبديل بواف ميش و سی علی علوی و امکانت بعد از احرف اهروف و اکثر خریفت اگر یا دار بعد از سه حرف بود یا بیشتر از سه حرف تظیفت هست میشه مانند مقدی که یا بعد از حرف چهارمه. بعد از حرف سووم خودش چارمی هست. بعد از حرف سوم یا بیشتر از حرف سوم یا تجدیدار هست میشه و بهجاش یا اسم منصوب میاد. مقضی که میشه مقضی مرمی مرمی محتوری محتوری, محتوری. قاعده دویستو بیستو دوبوم الاسم الازی فی وسطه یاون یا مشدد مکسورتون اسمی که در وسطش یای یا تجدید داره مکسور بیاید اذا به ایلیش زمانی که نسبت داده بشه به اون اسم منصوبی ازش درست بشه خوزفت یا اوه ثانیه یای دوم دو حسف میشه مثلا قیب یا تجوید دار دو تا یا هستند تجویدشو برمی داریم یکی یا میمونه یا دوم حذف معنیش اینه که یکی از یکی یا میمونه طيب طيب لین لینی کسیر کوسری پس اگر یا مشدد در وسط بود تجویدشو برمی داریم یا دومشو حذف بعدش اسم منصوبو درست میکنیم یا به عبارتی بعدش یای اسم منصوب رو اضافه میکنیم. قواعد تا اینجا جب میشن میشهن نموذجن فی النسبه الى الاسمای الى آتیه ای از نسبت رو در اسمهای زیر آورده است اصوان اگه بخوایم اسم منصوب رو کنیم میشه اصوانی طبق قائده عامه یکی آیی در آخرش آوردیم اما مکتو دیگه تا حس میشه گفته بود مکی ببا این هم اسم مقصور هست آخرش علفه تبدیل به واو میشه بباوی علف زمانی که حرف سوم بود توضیح داد در قواعد که اگر از اسم مقصوری اسم منصوب درست کردیم الف در حرف سوم بود تبدیل به واو میشه مانند باب می ده ببوی سنفا اینجا الف حرف چهارمه اینجا الف تبدیل علف میشه چرا حذف میشه در صنفا واجب هست که هست بشه به خاطر که گفته بود اگر علف حرف چارون بود و حرف دوم کلمه حرکت داشت علف حست علف اسم مقصور حست میشه در سنفا نون فتحه داره لیزه میشه سنفی علفش حست در ته تا علف جائزه که حست بشه چرا؟ چون حرف دوم حرکت نداره تحتی میتونیم بگیم میتونیم بگیم, بگیم علفو تبدیل بواب کنیم می توانیم بگیم تحتوی تحتی یا تحتوی گفته بود اگر الف حرف چهارم بود و حرف دوم ساکن داشت می توانیم الفو کلن حصف کنیم بگیم تحتی و می تبدیل تبدیل بوابش کنیم تحتوی نمسا همچنین نمسی نمسوی مثل تحتا هست مرتبا مرتبی الف کلن هست میشه چون حرف پنجم هست در مستبقا مستبقی چون حرف شیشون هست الف مقصوره الف حس میشه پس در اسم مقصور اگر الف حرف سوم بود حکم دیگه داشت حرف چهارم بود دو حالت داشت نگاه میکردیم که حرف دوم کلمه حرکت داره یا حرکت نداره اگر حرف شیشم یا حرف پنجم یا شیشم کلمه واقع می شد الف مفصول کلن هست می شد اینا توضیحاتش در قواعد اومده بودن الاشی اسم منقوص هست الاشوی چون یا حرف سوم هست تبدیل به واح میشه. ال هادی. اینجا دو حالت جایزه چون حرف چارون هست میتونیم الهادی بگیم الهادی یارو حذف کنیم و میتونیم یا تبدیل بواف کنیم الهادوی المعتدی حرف پنجم هست کلا حسف میشه یا منقوس المستجدی باز هم حسف میشه چون حرف شیشون هست حسنا ممدود هست حسناوی میشه حمزه تبدیل به واب میشه علامت تعنیس اگر بود تبدیل به واب میشد اجتزا اجتزائی تون همزه اصلی هست سر جاش باقی میمونه سفا اینجا میتونیم بگیم سفائی یا سفاوی تون همزهش منقلبه از اصلی هست فنا همتونین فنائی و فناوی ری رووی رووی اینو هم خوندیم گفتیم اگر آخر کلمه یای مشدد بیاد بعد از حرف اول باشه یای اولی به اصلش برمیگرده و یای دومی تبدیل به بواب میشه روی یا یروی هست اصلش ری لذا یا اولی به اصلش که بوده برمیگرده یای دوم و ما تبدیل بواب میکنیم میشه رووی بهی بهوی منفی منفی اینجا یا کلن هست میشه، اسماعی حیین حینی خزین، حزینی اینجا یا هم تذبیدش برداشتونی که در هیین هم همچنین چون اینجا حرف مشدد در وسط بود پس این نمونهها ها را آورده بود به خاطر توضیح قواعد خوندیم و تمام شدم